السلام عليكم يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائم الشارع اجمعين اللهم عاشنا جميعا در مرحل تفریقا درخل که تا زمان صاحب مداری که احمد بو محفه اردویلی انصافه مناقشات به از خواهش در بحث خبر چه در بحث اطموع و شهرت انجام گرفت با من خوب, خوب بود و راه و غاز کرد بس خوب بعد از باز محفه رو در کلمات از خار ما چون آن اخباری ها بحث بود یک شدت دیگری ایم کردند، تقریبا بعد از ظرف قدرت اخباری های و من همه محبه ویلی بهدهانی عبدالله نفسه و برد تا صاحب جواهی تقریبا باز برگشت به همون دعاوی اجماع در کلمات اصحاب وجوده با شدت و ذهب چون حملات تند اخباری ها امه بزاری به حال کنسید بزار بود چون اتواقی ها هم به تقسیم خبر شدیه هم بکردن هم به مسئله اجماع به این دو مسئله بشین درد هم کردن همجه های شدیدی به این دو مسئله کردن طبیعاً محصر بود تا حدی در تلمات به های ما و طبعاً به طور کلی اون قدرت به تأثیر اجماع کمتر شده بود چون به نظر بقایچی احساس میکردن با این اجماعاتی که مثلا زمان حلامه یا مداره که دیگران آمده با این ها نمیشه کشف اول امام کرد تا شبیه اول امام با این ها و در حدیه از این زمان ما فرصان در زمان خود ما مرموم تا یه مرداد دعایه اجماع رو بیشتر دردون کنن از مثل جواب رو دردون و مرموم استال آقای خوی تو این زمان ما باز همون ربود مطلب که اگر اجماع دارای یه باشه که کاش پس بول ایمان باشه بجهد و اون رو مثل خبر قرار دازد و که گفتن خبر ایشماعی تغییر کردن به خبر ایشماعی در مقابل خبر که تفسیرن بول ایمان هست و... یک تحولات دیگری که بعد از ازامه در میان فقهای ما، راجع به ایشماع پیدا شد تا زمان ما دیگه هم داشته می خواهد تا فلان زمان دو تا مطلب یکی این که از به علماء در بکار بردن رفضه اجمان احتیاط بیشتر کردن مثلا برا خلاف نحجه بروپی لن جد مخالف هم فیلمان فرد روزه بناسه این تو تعاوید در فرام زید منتزای در علام شم در علام شم اما در فرمازه ما ندید اما یا خیلی چم اما بعضها چرا؟ از قرن هشتون به برد یواش شواش مثلا همچی بهتر آخانه مثلا جماعه و بعد از وید بهتباهانی ازده ای بیشتری توی این اطلاق انصافاً این رو باید چرا کنن شبابتون مثلا حضام ادعای اجماع میگن بعد در مختلف خودتون مثلا با خالف نقوم کرد این منشاء شد که روی کلمه اجماع بیشتر ولی ازا در یک مسئله شانونی مثلا و دعا فیر کنان از اجماع و دعا فیر کنان شعرات متخصیلی و دعا فیر کنان شعرات این امارات اینجوری رو ما در میان فقهار خودمون می‌بینیم این در زمان صابق نبود در قبلن اندامه این توابیر نبود محصه دیگری که با زرده این آمد که یک مقداری عرضش اجماع رو میخواست بالا ببره تکسر در وای اجماع بود این عشان صاحب جاه و دل اجماع ایضوا در احصاب این مراد از ذل اجماع یعنی چند بار از بزرگان ما دعوای اجماع کردن فرض کنید مثلا شو یک مسئله بین مردان دعوای اجماع کردن و بعضا اندامان دعوای اجماع کردن و بعضا صاحب نداره که دعوای اجماع میگوشن با دل اجماع ایضوا بده این رو ما در کلمات خارجی ها نمیبینیم یعنی قبل از اعلام اصولاله نمیبینیم شاید بشه گفت تا از تازدودودان مثل صاحب مدارد اونها یا خیلی کمه یا نیمونی اما این بعدها تکسور مدرگی اجماع خود در برگماری که والا دینه و در اجماعه به دوبار خب خایدن خالی این رو هردش بیشتری بشدن نهی که من دروای اجماع بوده 5-6-7 تا از فوقها دروای اجماع کردن خب شواهد الان یه تحقیلی که ما الان ارزکره ممکن است یه این مسئله رو تیر محتضای یا ندریت دایه اجمار کرده از همه هم دایه اجمار کرده سال خدا دردنه خبا طولی هستم از همدیگه گرفتن چون این تکثار دایه اجمار خیلی مصمد تمنده نباشه. لیکن خب ارزکرم چون به اجمار باشیشونه که هم بودم می این مسئله پیش این شبیه ا حدیثی پیش آمد مثلا صاحب مدارک که اعتقالش این شد که خبر سههیی که در به باشه این کاشه دو نبر رو توصیق بکنند نه این نبر توصیقی نبرم کابی نمیدونست من من این دو نفر رو که قرار میداد باید در یک مسئله نجاشی توصیه کرده علامه هم در خلاصه ارباط نجاشی رو بوده کنند تو توصیه توصیقی کرده این رو یکی دو, دو, دو کسی توصیه نجاشی یکی توصیه علاق و یکی کاملت واضحه علاق توصیه کرده در هم طوری هم ایشون توصیه رو آگر ایشون مرموم آیه، صاحب مدارک بگم همین مقدار کافیه موسطق به عدل باشه نه موسطق من مرموم استاد، خوب یا موسطق به هم کافیه نیم خواست موسطق به عدل اما صاحب مدارک وقت نتیجه چی دو تا ارد رو شد بر نجاشی و علامه که عبارت نجاشی رو نمک کرده یا ابن داوود که عبارت نجاشی رو نمک کرده این رو محصر که علامه توصیر ایست طبیعه که نترسی به افتاد که قوم ظاهراً کاملاً واضحه یکی طوری هستن نه. لکه بیگه چون علامه قبول کرده توصیر و نجاشی نمیدونه توصیره از وقت مردم استاد ما مؤثر رو وارد دواره کافید ما اصلا اون باستان توصیق آزه شد. شد. علامه شده از کسی دیگه تو با توصیف شده هم باشه اصلا توصیق علامه از کار انداخت تفاوت باها رو بگن اون راه انگاه تقاوتش رو اصاب بکنیم توی ما هم این تکسر هست اصابت و در کلمات سا جواهر قبل سا جواهر دیگر، خیلی از خطوبی که در وقت از محید بهبانی مرموم قدس الله نفسر دیگه خیلی از خطوبهایی که مذاشی داشته به این تحبیر و در اجمالت ایمال بایده این در فرمیمه شیعه این تکسر روزه ادعای اجماع که وقتی هم بررسی میکنند و سعی میکنند، نه اونش که بیشتر میبیند ولی در یک نوجوان بیت ها بوده و که به این میانجا میدادن وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم اغلب از این دسته دوست دارن که نگریس باد، آلاور باد، همه دوستان اجماع هم. تقوی هنده که میتونید. یعنی یک که کسی که شاید به نظر ما چندان ارزشی نداشته باشه، این مثال بیشتر در ذیل است و با این تنگیری که ما اولاقام عرض کردیم دیگه آشان بحث اجماع را هم تمام بکنیم میشه الله تعالی یک بحث اجماع بدون شک از اصل تهابه مطرح شد حالا با تهابیر مختلف حالا دیگه بحث کردیم و اجماع در راه در ادل مسادر تشریف داره بعد بعدها بیانه علمای اسلام این مسئله مهد کلام داره گره افراد مثل معتزله علیه از معتزله به شدت بی مثلا حمله کردند هم به لحاظ تفوق اجماع و هم به لحاظ اینی سغرا و هم به لحاظ قران همون اشارات معروف که اگر منقراض یا از و خطا باشن چطور میشه مجموع به اجزای خطا باشه که گذشت ادعای علمای اهل سنت از خصوص مدنی اجماع علماء مدینه را اوج داده و, و همین خصوص شیعیان یعنی علیه السلام به اجمال اجماع ائمه خطا صحبت کردند توضیح دادند اینکه بعدها از فقهای اسلامی مثل ظاهری ها و ابن حنبل خصوص اجماع صحابه را به عنوان کاشه بر گردانیدند این مبدا یک تفاوت یباشه بین اصحاب ما جا افتاد در واقع ما هم اجمالاً موارد ی یعنی از اجماع وجود دارد که اونقدر زیاد نیست که از استنتاج بگیریم در میاد از و مردم با در نظر گرفتن اشبال و که ششگان مجموع اجازه خطا میشه ریل جازه خطا چیه این راه رو پیدا کرد که اگر مجموع از و علمانی اسلام باشه چون امام در اونا هست این مجموع غیر جازه خطا است خاطر وجود امام احتمالا این شبهی احشاء را احشاء مقتدین شاد کار و بوده و اجماع ما یا در مکه بردار دقیقا نمیتونیم برش مبده میکن حس میکنیم از بود سال های سیستد سیستد و بین اصحاب در برداد مشکل بوده این تلقی باید سهبیر به اجماع کردن سهب سال زد از از در مقابل محتب قوم که به جای اجماع روی اصول آنسان نفاق حساب میتون البته مردم شیف توسی بین هر دو را سعی کرد جمع بکنه و بعد از سید مرتضا اشکال اجماعات سید مرتضا و نظرمان خواهیش واضحه ما و از ما و نیست و قبول در علمای بغداد اما بعد از سید مرتضا آله اصحاب ما که متکلم هستم مثل این و مثل این نظروه ادلاعی اجماع رو کردن به خواستن رفتی که دیروز من توضیح زید اینایی که دنبال خبر نه بودن دنبال محضون بودن اکبار بودن با اجماع تا زمان انلامه زمان انلامه تن ردعاوی اجماع زیاد شد خوصا که ایشون فقه مقارن نه زیاد این مسئله مزرد رو خود ایشون اضافه بر اجماع شهرت رو هم اضافه کردن و موارد اینها رو هم توضیح دادیم ازده ای از دید. موارد اجماعیشان و شهرت ایشان فتابه است که شیخ توسی در مقصود داده سابقه هم نداره کلا در فقه ما سابقه نداره داده در و نه در این علامه بعد از علامه به خاطر علامه علامه انصافا که مسائلشون در خبر را داره پیش ما مورد حمایت از خواهر داره مشکلی که بعد پیدا شد این بود که فقه این ضوابط علامه باید از خبر ترد می شود از عمل کردن باید قبول می شود خواب عمل نکرد که ارز کردید این مشکلاتی کرد و اصلاحاتی و عوض کرد کارهایی رو انجام داد که یه افتیاره بود تا زمان مثل مرمون صاحب مرمون مداره, مداره تا اونجا هم باز ما آثاری از اجماع می بینیم و ازش اجماع با آمدن اخباری ها و حمله شدید اونها هم به خبر هم به اجماع اخباری به هملا همده کردن هم اجوان همده هم اخباری ها گفتن اگر شهرت قدما باشه برو می توانیم امام <تصال> <تصال> از خواهر اقام بگیری والله محمد استرابادی این موقع رو استثمار کرد هم متأثر شد به این شدید انصافا تأثر پیدا کرد در اصول جدید که از زمان مرمول عید بهبانی به بعد تا زمان ما حقیباً با احتیاط بیشتر نسبت به اجماع و اخبار کار میکنن انصافاً اینطوره. نه مطلقاً قبول میکنن لکن به طور کلی داریم از بزرگانی که مثلاً خبر رو با واقعاً رو با خبر مطلقاً قبول کرده ولو بله هم هست کردیم از ما رو چون این دست رو من بیروز توضیح دادم اینی که ما به شعرت اتخاب عمله بکنیم یادن کنیم مرحبا به عوشن تردیشتون هم ممکنه تا برای از تا این گوبه توی بکشه امروشون این, این کتاب مصباح مرموم استاد رو قرده بودیم چون چند دفعه هست کردم استدلاده ایشان رو من اینجا، ولی وقتش اینجا نیست به حاضر کلمه شهره این بحث به اصطلاح عمل مشهور و اینجای شهره جابرت یا کاسر از رو کلمه قبلیشون فقط برای قوایدی که منشان وارد کردم روشن بشه براتون که بعداً موارد نغدی که برای ایشان هست خود برای هم در مقام نغده بهتری از که اصل عبارت خونده بشه و دقیقاً بگید اینجا اشتباه داره کلی صحبت نکنید خالص در این مصباح ویلاره شاپ جدیده خدیشم همین همینطور نمی‌دونم مثلا شاپ جدید بودو چینی جدیدی جنده به اصلاح شمایه حسنطل افحاسیشون که اما به خود کتاب جنده دوست خود نصفات جنده دوست. در صفحه 235 ایشون فرمودن که دو تا مطلب رو باید بگیم حل امرال اول امکان خب ان الخب امکان زعیفن فی نفسه حل یعنجبه رو زرف رو به عمل مشهور املا از کردم حالا من میخونیم المشهور رو بین المتاخیرن حوضاره که عمل مشهور به اصطلاح جاگر زرف سنده این مطلب رو ایشون به نصف مشغور دادن به المتأخرین المتاخلی اصطلاحا متاخلی رو از زمان مثل محقق و علامه میگیرن ایشون تحقیق تاریخی نگردن که چرا ما یه تحلیق تاریخی کردیم که این از زمان علامه شروع شد و هم عرض کردیم علامه یک زواقه و قواردی داد برای محقق حدیث این ذوابتیشون با عمل قضا ما نمیخورد مجلد. مشکلش این پسیل یک کلمه یک چارچوب معیمی دار خبر اگر اینجوری باشه صدیه هم اینجور باشه اینجوری باشه حسن هم باشه در یک مقاماتی امان به موسط باشه امانه به زیر هم امانه آمدن دیدن در خوزنهای اصحاب شیفتوسی سیده مرتضا خود مرتضا خود مردون شیف مفی به حکمی دادن که مستند و فعلا اخبار ضعی عملا بود کردن اشتایش و ذکر المحقق دیگه اگر ایشون دقیق خارجشی میفرموندن دوباره این بحثا نمیگرده من این بگم که روشن بشه و ذکر المحقق و نائمی قدس الله نفسه فی و جزاله اندال خبر الزعیف منجر و عمل المشهور حجتون به مقتضا منطوق آیت نبه از این رو وارد شده از مفاد و حجیت و خبر فاسد منت قبیون و عمل مشهور من طبعیم اینه تو اجازه تفخیض هم نوشتم خدا آرکویی به دست نمی‌خویه تفخیض خودش نمی‌توه وصل خودش نمی‌آورد نه یعنی دلیل آرکویی برای این که شوهر جادره انجام آگاهان فصل مدنی من طبعیم است و سر شلیک رو خدا متعال برول کرده با طبعیم عمل مشهور از مصادیق طبعیم است. عمل مشهور از مصادیق طبعیم. البته خوب بکنید این حالا خود این کلام حالا هم همین که همشه آخر کار برگه ما خیلی از اخبار آفی که داریم خوب دقت بکنید تو ما هم در طرف میگیم ضعیفه، نه به خاطر اینکه که خبر فاسده به خاطر جهالت ماست و این اختصاص به ما هم نداره از سلمی که از مشکلاتی که در رژال پیدا شد کلا یکم از عدله کسان همی کنگن رجال حجت نیست کلی هم یکیش اینه که خیلی از افراد رجال رو که منوستن که خبر زریع کن در اجزه نمیشناسیم نه اینکه به بدی میشناسیم اشتباه نشیم میگیم زریع کن لجهاره نه لزهر فلان پلان عبارتی من چند بار رو جعب کردم بعضی از علمای رجالی عقصانت گفتن میگن ما ممکن هستیم خبری کسی رو قبول نکنین نکنیم همین آقا الان در عالم برزرد در احلا درجات بهش باشه اما ما خبرش رد میکنیم تو نمیشناسیم ترس هم مگر آقای خویی به اینجوری بگن بگن چطور در فاسق با تباییم هم در مدیول با تباییم این نیست که ضعف خبر همیشه به خاطر فاصل بودن باشه ما مقدار زیادی از ضعف خبر با الان که ما داریم که اینشالله یه وقتیم توضیحات شد از اصلا یکی از اشکاراتی کسانی که به رجال میگیرن همینه حالا اهلسالونست رسالونست که رجالی مفصل دارند، گاهی درباره یک شم سه چهار قول دارن خیلی مفصل نموشن مثلا میشه مؤزم کسانی که روات امام ساده هست بدون 3,000 تا سیادان هموند شد تو زیر نظر یک نیست 3,000 تا سیاد تو ساده توی رج شاید از این سه دار سی ست تا سال و پنجاز گفتی ها توسید گفتی سی قطعا زیگه اصلا بغیره ساکره اون کلن ساکره هیچی نگفت فقط ارده کنم و همستان از ها بساده به ترده اون رو چی؟ اصلا هیچی نگفت یعنی ما موظم موش اشکاله ما اصلا سونیان برن تازه موظم اشکالی اشکال به ما بیشتری که. اصولا اشکال میشه به رجال که اون چیزی که از برتر دارم درست باشه اونی که شما الان تو صحنه حمل داریم باره باید شما نمیخواه راست دارم از اشکال باره دارم این ما بگم باره دارم مجموعه ای که ما داریم انصافا نارضیم با اون مجموعه حدیث ما چیز بین 15 25 تا 25 هستد ممکنه و خیلی 25 تا 25 هستد خیلی دیتره نسبت به مجموعه روایاتی که ما داریم معلومات رجالی ما کمه اصولا کمه این یک امر واقعی است خود اهلسنت هم کم زیاد دارند من این رو در توضیحی که کتب رجالی یا کتب تاریخی از این دی قبیل مثل استالغابه سهبد اینه که اینا برداشن چندتا کتاب در حال صحابه نوشتند ممکنه خیلی و از افبار وجود واقعی ندارن یا اسمش اشتباه نوشته شده من تو زیادش ثابت دارم اشکال به ما هم نیست بحث السنه است یک اشکاری چون این تدوین ها در شد نه هم دعوای صحابه بشه نه هم دعوای ما با اصحاب ما مصادره بشه ما قدم این کتابی رو که نوشته شده در رجال در شیعه تعلیق شده که الان هم آثاری از مدارک کلا اون یکی من می‌دونم آس... کتاب عبدالله الله بن و حالا 22 24 رو ما و کموزی این قضیه ترین کتابی است که ما می‌دونی تو تصویر شده کتاب و, و ساده خود اسم موفقو کاربر این کتاب تقریبا قدیمی کتابی شده رجال ما علی سر ابن فضال مال علی که ما رسید قطعاتی از این کتاب در کتاب رجال کشی موجوده خب این مقدار خیلی کمه فوق العاده این مقداری که از کتاب خودی پیشنهاد شده اگه هم زمانش این متأخره هم مقدارش خیلی کمه حالا شیخ کجای از کجا این 3300 دلار رو از قائم و صادق اون توضیحات که خودش برام نمیخواد قراره خوب دقت بکنید خیلی از این اخبار رو که ما الان میگیم ضعیف مشکل هیچ اینه که اینا زعیفه ولذا از کردن محروم مجلسی این آنوز قطع نکردم چه بیجه ها در مرآتر و از خبر رو کنه اندل مشهور این اندل مشهور برای همین اضافه ترده کلمه اندل مشهور برای افتیات علمی ایشانه یعنی رو این اصطلاحی که علامه فرمودن بعد این خبر زعیفه پس این که ایشون فرموزن به مقتضا منطوق آیت نبر از مفاد و حجه به خبر فاسق مرتبه البته خود استدلال مرموم نایه اگر این بوده در دست به اصطلاح خودشون مثل قضیه حقیقیه گرفتن برای شما رو اوشن صرف این که اصحاب ما عمل مخشور رو جا اصلا خود این مدت قضیه خارجیه از حقیقیه نیست یعنی به عبارت دیگر شیخ پرسن طوسی یا نجاکی یا که از اون سید و این کار انجام نداره این کار بعد از علامه شد این کار در تاریخ ما تاریخ داره تاریخ زمانی داره سر داره سبب داره اینطور نبوده که با تحبت بایه با ندر بخوایم درست کن قرار باشه این کارش این بود مقیاسی تعلامه گفت با. با عمل قدما نمیخون این ما تحلیل ما چی شد؟ اون مخیاس علامه اگر خبر عدل باشه طبق تصویر ما شواهد قرآنیه شواهد دینی اگر خبر سقه باشه که استاد فرنده شواهد قوالاییه مشهور شواهد مذهبیه این مطلب اجمانه در بین اصولین ما و اخبارین با, اخباری با تفاوت اخباری ها گفتن شواهد مذهبی و با بر بر اخیر الان ما داریم همین الان تو زمان ما اینشال ده ها کتاب فرقی نوشته شده اگر دقت بکنید هیچ بحث رجالی توش نیست میگه امران به خبر زاره امران به سید بز هیچ بحث رجالی نمی کنه شما شد تعجب بگیم که اینا مثلا شو صحیح اهل عالم یا در چیزی دارن هیچ یاشون چون به بحث رجالی اینکه نمی کنه اینکه دارن اصلاً اینا دنبال فقط مذهبیه مشهور عمل کرده باشن میگن قبول نکرده اون شو تا اینی که شما در اذهان از کتب میبینید هیچ صحبت شواهد رجالی نمی هیچ بحث رجالی نمی شه حتی مثلا قال کلام صحیحون قال کلام موثقون قال کلام غریبون خود رو درسته اصلا وارد این بحث نمیشه. این نکته داره که تسامح نیست نشبهان و این از خصائص ماست از قبل دیگر شمیا وجود نداره بحث تبیین نیست ما همون نوییش که بعثه تبعیونه، بعثه تبعیونیه. و این تا حدی آنطور است، انسانان اصلا متلب بروستم ما قبولی کرده و که ما یک شواهد دیگری مجموعه شواهد رو تأیید کنیم شواهد فرهنگی، اما قبول رجالی، این توضیح فرهنگی رجالی هم، اگر نگوش مال واسی مالاشن میشود، اما این شکل بندی و دسته بندیش رو تأیید بنده به و ایشون آیه خوبی میفرمان که پس این مسئله، اصلا راه برود این مسئله تباید نیست در آیه نبر راه برود این مسئله رو باید مرمونایی از یک قصه تاریخی بعد از علامه شروع می شود بعد مرموم استاد می آفق و افقناه و علالالک دور از ما هم قبول کردیم ولیکن در عدم و تمامیت وجه المذکور ما دور سابقه مثلا دور اول دوم وصولی شد از تباین عبارتون عنوی استیزاف و استهشاف به صدق الخبر و خوبه طالتن یکونو به وجهان کما اضافه اثر ما بعد الفحص و نظر علاقه داخلیه بله و این موجب به میشه و اخرای خونو به تعبد کما اضافه دل دل و معتبران الان صدقه یه لقیه معتبر بیاد که این اضافه درسته فیعه اخد و بیگه ای بر پس یاد یا تویان تعبدی خبر صحیحی بیاد. ایشون میگن اگر خبر ضعیف بود اگر این پیدا کردیم که اصحاب قطعاً رو عمل کردن اسم اسمشون بوشن تسالم پس در اینجا ما به اون خبر ضعیف عمل میکنیم. کنیم چون این پیدا کردیم که این حاجاته. و اما اگر شهرت آمد یا باید یک دلیل تعبدی بیاد، اما شهرت عملی چون خود شهرت فیلنسی کنه حجت نیست نمیشه تعبودی باشه نه وجدانیست است تعبودی این خلاصه اشکالیشون یا تبیان است یا تبیان تعبودی و این فت و المشهور لا تکون و حالا حالا فرصم کشور عمل کرد فتوا که حجت نیست فلیسه مناکه تبیان و رجدانی ولا تبیان تعبودی به این شعه تو قل این الخبر از ضعیف لا یکون و فی کی نفسه شما ببینیم باید خبر زعیف فی نفسه که حجت نیست باید یک چیز دیگری بیاد رو حجت بکنه. کنه و کدار که پت مشهور ایره حجت فی نفسه و انزما مغیره حجه الا غیره حجه داری خود, خود عمل مشهور که به حجت نیست خود خبر زعیفن که به حجت نیست زمین این دوتا شبیه بحث اجموع کلام عرض کرده و بله این انْزِمَامَ من عَدَمٍ إِلَى الْأَدَمِ لَا يَنْقُلُ خِشَّ إِلَى الْأَدَمِ حالا ما در جوان فارسی میو صفر به اضافه صفر، 000، مصالح با اضافه، صفر، با با سفر. در آخر شوفه صفر رو با هم بیان بکنید. آخر الامرش با 3 بعد ایشون میگه که و دعوا. حالا چون بعد ایشون یه کلامی دیگه هم با همین اون کلام این مناقشه ما تو این کلام ایشون روشن. و دعوا ایشون یه دعوای مفرح می‌کنن که عمل مشهور به خبرن ضعیف توسیقون عملیون دل مخبره به مخبره به اشتر این این خودشینو توسیقه فید ستو بیهی کونه سقتا فید خلافی موضوع الهجیه بین این معنی در نل عمل مجملون لایو علا وشکو ما نیمگیم چرا حمل کردن شیخ توسیق فیهتمن ان یکون عمل هم لما زهر من صدق الخبر و مطابقتی تیه لا لکون مخبر سقتا من ده هم فر خبر او فر عمل او به خبر ضعیف نه یه دولت توصیف، علمخبر خود عمل توصیف نیست. ولاسی ما آنها لم عملو به خبر آخه، چون یه خبر زعیفی پیدا می‌کنیم که وش عمل نکرده. حالا کلی هم از حیصت کبران. و اما و آن عمل مشهور موجب در جوار خبر هم. و اما صغرا. و هی استناد مشهور إلى خبر زعیفی مقام عمل، این که این یه شهرت عملی عملی مراد از عمل در اینجا عمل خارجی نیست مرادش فتوای آنماست و لذایشون داره مقامل عمل و فتواه این درسته وقتی این شهرت عملی جاوره مراد از عمل فتوا دادنه به طبق خبری مراد اینه فی اثبات ها من اثبات کبرا این که این شهرت عملی با... این شاید مرحوم مقرر رحمت الله ایشون هم استاد همیشون هم کرده. شاید درست نداره. مراد مرحوم و استاد اینه چون اینه مرحوم نایینی هم داره حالا اینجا بیگم شاید مقرر کام چون مرحوم نایینی میگه شهرت عملی در جایی جابره که استنادی باشه اون دقیق کنید شهرت عملی استنادی جابره اما اگر شهرت عملی تطابقی بود جابر نیست این بساره با همه که من, من. مراد را درشورت عملی استنادی یعنی فقاه ها در مقامفتوا به این روای استراتت ضدید به وردن بهش استطال کرد. ما را در عملی تتابی در اصطلاحات ایشون یعنی فون خبری بوده زدید بوده در به عل و شرایه اوولما هم نورددن در کوب بربر نیامده زدید که از خط ص همین میارت که جمع بین فاطیت ای که تصدداد به این مدت مایوقی فوا میزد کهجر بین فاطنته جز نیست، این یک قرار واحد در ادوار شرایط صدوق در جایی کتابش نیورده. نه رو شیخ و کلینی هم نیورده اندان که لو فاطمه هاید شفع علیها. دوستان صدغی بقول قیسری. به هر حال دقت فرمایید این روایت حالا اگر یک خدی یابد تفضا رو روای مشهور قدیم تفضا ده از اون هم روایت نیورده این رو محمود نائینی اسمش عملی تطابقی. چه فتواشون متابقه با روایته اما استناده با روایت نیست در این که آقای کویی می فهمند سه اثبات بله به مراد القائلینه به انجوار انجوار و حمل قدما اصحاب به اعتبار و قربه درست توضیح داده نشده اعتبار به انجوار در جاییست که استناد باشه اما اگر استناد نبود بجرد تطاوض بود اونجا لایجه روشن شد اونجا جبر نمیاره بله اشکال ایشان بر خودما اشکالش اینه خودما نمیه تا عرض و استدلال روشن شده عبارتان میگه خودما استدلال نکردن به روایان یعنی استناد واضح نیست اشکال دیگه معلوم نیست حتی بای خودما شهرت استنادی باشه روایت هم بود اینا فکوا دادن خالص تابودی بود نمیه تعرض له ذهن آخرش چون اول عبارت ماسیه خیلی واضح هم مقرر با این ذهنش واضح شد از خود اون که در حقیقت باعث این شده بود اینکه ایشونش از مرحوم عین بجنودی از زمانی هست در ابوالقاسم ولی خدما نمیه تعرض له استدلال نمیه تعرضو فی کتبه لیو علماء استنادهم الی این استدلال لیو علم استناد هم، اهل خدا را زعیم. یعنی شما اضافه آنکه زعیم شد، فیو تمام انتکون شورت حجابوری یه لات استنادیه. وقت ما رو می‌نویم یا آذیا، یعنی که دنبال شهرت هستن، شورت عملی رو جواب میدونن اونجا که استنادی باشه. اینم اشکال دیگر. و این نماد مزکوشی کتوبه مجازات الکوا. و المتعرض بالاستدلال انما هوا شیخ خطوسی فالمحسود و طبعه هون من تأخر انه و فیداله دون من تقدم همون الاسخاب فمن این وستکشف و عمل و قدم ها الاسخاب به خبر زعید و اصلا وستناد این استناد مهمده غایت الان انا نجد و فکر همون هم مطابقه این کوب اغور سبید شما بله، اسواش تطابق با خبر ضعیف داره. این و این شوخه تطابقی موجب حجیت نمیشه. و مجرد المطابقه علامه تنطبق می‌تویه. لا یدل علامه گفتم اجازه خودشون نشه میگه. لا یدل و الا انهم استند فی ادلفتوا الها در خبر از یظهر الکون و دلیل اندهم غیر است. این خلاصه ارشاد ایشان داشتیم به من با احترام البته استاد میشه که این خطا محسوب استاد فهمیدن که شیخ طوسی در خاطر مبسوط متعرض به استدلال شده من نمیگم شاید دلیلش نقل کرده در کتاب مبسوطی که الان چاپ شده به اسم شیخ طوسی که تا استبدال داره. داره شاید ایشون فرق کسی که برایشون نقل کرده اشتباه شده ببین مبسوطی شیخ تفریق داره نه استدلال بمگه ایشون جو مثلا مثلا مثلا حالا مثل در همه کتب خیلی مشکل داره. اما کتاب مقصود شیه تروسی حالا اگر خلاف رو میفرموند ممکنه چون خلاف اینطوریه دیگه فتوای ابو همیخوی دیگر بعض دیخت هم عدله اونا رو میگن, میگن دلیل میگن خلا شاید خلاف بوده نه مقصود باز هم خلاف هم مشکل داره از چون خلاف رأی شیعه در مقابل سنیه هاست معلومی است استدلال استدلالت ها بشه. باشه بلزه شیخ در خلاف مطالبی اون دقیقا میگه عملاً بشه نمیگه تو نهایتاً بشه نمیگه. خوب دقت بکنید که استاد احسنا برای اصول درسشون ایشون عجلن. علیشون مقصودی رو کاملاً واضح کتاب مقصود استفاده نمی کنه. اصلا که این که نوشتن که این که درست نیست، بله، مقصود کتاب تفریحی شیعه است این درسته. چون تا قبل از منصور مبنای اصحاب تفاووشون عین نصوص بود عین الان چه در مفصول از این قاعده خارج شد تقریعات رو ذکر که در درسوس نیست درست همونید؟ استضلال بهم کتاب و خلاف چه چونان بگه وقتی مسئله مسئله درمی کنم بگه در این استضلال که در کتاب خلافه که استدلال کتاب خلاف هم درست نیست بله اگر ایشون درم به جای خلاف ها پیشت کتاب تحضیب رو میفرندن باز معبولتر بود خب من سرش اینه که چون بزرگا غالبا خودشون مستعین به این که آقا مراجعه نكردن اون سی و یه کتابا ننشستن بله مرحوم شیخ در کتاب تهذیب حالت استدلالی برای شیعه داره چون تهذیب متن مقنعهی شیخ مفید است متن کتاب تهذیب مقنعهی شیخ مفید است اینطور خطبای شیخ مفید میارید کیکه 100 200 صد،, صد،, صد, صد میاره میگه وعظو لعن ماروا و فلان حالا اگر ما استدلال بگیریم بعدم میگه که بلای یونافیه نافیه ماروا و کلان استدلاله در کتاب تهذیب این مقداره استدلال برای فتابای شیخ موفی در رغنه گار یه هم متعرض روایات و معارض میشه من دسته آنم دقیقا نمیتونم عرض بکنم شاید جلد اول شاید تا نصف جلده اولم چون من دیدم اما آنم میتونم اون آخری شدیم کجاست یه مقداری در جلد اول چون میگن مخصوص و تحضیل رو شیع در جوانی نمیشته والا اول جوانی شکنه میشه رو داره 23 ساله میگن نوشته در حدود 22 ساله 23 ساله بیده نوشته. یه مقدار اول کتاب تحضیل استبلاناتش اوسره و آیات تمسک میکنه کمی هم چی جلده اما یواشهاش این کم میشه بعدها فقط احتفال میکنه عبارت مروم شیخ مفیل قال اولش بگه قال دامدالله چی؟ الله اول جلده اول و اشتا جلده دوم از شیخ مفید به عبارات تعلیم کنه که شیخ محفید زنده بودن بعدها میگه قال قدس ده بود بعدها میگه حتی حال نقل عبارت مغنه را نداره میگه قال اله دو دوتا کنه میاری میگه همه عبارت محفید هم کامل نمیاره اون رخ میگه یدول داره اگر این نقدار رو اسمش رو استدلال بگونه هم این که این نام این فقط در هر خبره مثال اول جلد اول از تحلیل استدلالش بیشتره. سعی میکنه شیر مثل فریادها استناد به آیات کتابی و همچنین با آیات کتابی استنادش در اول تحلیل بیشتر بعد اون کم میشه. کم اینکه در اول تحلیل آسانی س... دخیلی که نام میکنه کامل عدد نویی اشیاء موجود انقلاب انقلاب بعد دیگه شیء شیء این اینم زیادیه. بعد میگه رو حسین سعید خب سابقا سند خودش رو از شیل مفید تا حسین سعید میوبا بعدم اینا رو میکنه این <تصفيق> میکنه میگه رو با حسین سعید دیگه بدون اوائل تخزیر یک مقدارتی و ممکنه البته عرض میکنم ممکنه بگیم مثلا اون جاهایی که ایشون ساز کامل آورده میشه ارزش خواهد بشه حالا ما واسه این بحث تو بیو تو بحث خبر یه توضیحات اونجا عرض میکنم باز این مذهبی که مرحوم استاد فرمودن در, در اینجا این مطلب درست نیست راجع به ورشکته طوسی و اما اینکه معلوم نیست استناد این دیگه تنداطی ایشون قطعاً قدمای اصحاب فتاواشون عین ندوسه این دیگه قطعیه یعنی تو شبه بر نمی داره احتمال اینکه این شهرت تطابقی باشه صفره ان احتمال بینهایت است قطعاً قدم های ائصحاب چن سال صد و سال شهشه چن سال فوریه که اول هست صدوق پدر صدوق پسر مرحوم شهر مفید قطعاً فتاوای اینها این مصوصه و اگر فتوا دادن مثلا در خیلی از مسالک اینا فتوا دار روات معارض هست و اگر پتوا دادن اطلاعا تتابای اونها است اینی که استاد فرمونن این یعلم که این شهرت استنادیست یا تتاباقی ندیگه این یعلم و حقش نبود استاد بفرمایم کسی دیگه مراجعه به کلمات و قدمات و شروعشه قطعیست این مطلب نه اینکه که احتمال شما اطلاع ده و لذا من کلارن عرض کردم اینی که پتوای فرق رضا رو الان مشغول شده فقرازه یا فرس مثلا شیخ صدور جزوه شواهد مذهبی بر حکمی گیرن اشکال ما اینه جزوه شواهد مذهبی هست این درسته بلکه پیش ما قطعیه پتحان در بین اصحابیم با که این نمل کلام شواهد قطعیس بر حکم ان ان یا شواهد قطعیس بر, بر وجود روایت و دلیل اشکال ما با این آقایی بینه <تصفيق> اینه که ایشون میفرماید این میگو استنادشون نه قطعی است استنادشون نه اینکه من میگو علم این درمال کلام استناد به کلام امامه که اسمش طرف است یا استناد به یک روایتیست که اما نرسید اگر از ما رو ضعیف میگو نسید اینش رو چندیست خوب بود اینش رو در از اشکال استنادش به خبر قطعیه نه اینکه احتمالیه استناد پتابای فرزان صدوق به خبر حتی که حرزان به خبر این قطعیه این توی شبه بر نمیداره خیال تو راحت باشه بله این استناد به کلام امام این شبه داره این دو ساق با هم دیگه اونه که همسال مقروم نایمی های بروجه دیگران ها خیال موکنه اگر خودم های اصحاب گفتن قول امام این شبه داره این که کاشف از قول امام باشه شبه داره این روشن نیست اصلاً اما اینکه کاشف باشیم این که قطعاً خبری موجود بوده و قطعاً به استناد خبر فتوا این صحیحه این توش هیچ مشکلی که پس اون چی که خرج شد در کلامه استال اینجا شد ایشون شما که نگید استناد گرفتن نه استناد به قول امام نه استناد به روایت نه به قول امام قطعاً منبعش استنادشون به روایت فتیس استنادشون به قول امام قطعی می‌یزد. چون رواج رواجشون چه امام باشون چه نبود. اون یکی قطعی می‌یزد. اما استنادشون به روایت قطعی پس اینه که ایشون می‌فرماین شهرت استنادی است. کته استنادی است. من انجوالند در کته انت قدم استنادی شهرتشون کیشمو. بله مثلا ابن ادی شورا استنادی می‌یزد. ابن زهره استنادی می‌یزد. از این قبول ندارند که استنادی بود. نیم قدر حکیمی بود نه خبری. اما امثال شیخ بفید مرحوم صدو حتی کتاب پهارزان اینا استنادشون به دلیل قطعیت انم الکلام در حجیت است. فتحه سبه الاغ بعد امر ثانی که ایشون اوگردن اینه که انرخبر اضافتان صحیح هم او موسق انتی نفسه هر یک گناه راز المشهوره هم مییم لبهنی هم سقوطی یعنی حجی املا. ون مثل بیشون مونده بود نه مجبور تکمیلش کنم اینجا. عالم شورو به نهام ها عدالتی نم شعاره تحلیل. بل سر از داد خبر و هوهند نه و کل مزداد خبر استحده. این از کلمات معمول نیست ما در برج مندیم شبان شدی. اگه از مبانی لطیف نیست، کل مزداد استحده از داده وند. قله ها ترجیح میگه هر چی سختش بیشتر باشه، اشکالش بیشتره. یعنی اگر یک خبر سخت باشه و از حال عمل نکنم. خب مثلا یه تو چه خللی. اما اگه فرض کنیم تا خبر صحیح اسانید صحیح رو مثلا ایه وذو اثر هم 5 تا نسبتا معتبر داره. شیخ تووسی هم آورده، کلینی هم صدوق هم نیاورده. خرپا هم قدمان ندان. ناینی میگه کل دم از ذات صحت تن از کلینی انقا در خود شیخ توسیم فتحان آزید شیخ توسیم فتحان من خب ایشو می فرماد اگر زیاد شدن و احادیث کاملا سریع و صنف شدن و معذاره که عمل نکردن منوش اون خبر اشکال خیلی زیاده بگیم که این بکنید این منوشی خیلی اشکالی زیاده که با این هم اصحابی سریعه و معتبره معذاره کردن نکرده این قانون کلم از داده سرطان از داده این اینه. یعنی کلم از داد سه حتن سندن از داد عملا و حجتن این حجت این بعد ایشون می فرماید و تحقیق عدم و تمامیت باید. بلا وقتی یکی داری خودشه از دیگه من دیگه تماش کنیم دیگه فرزا شما معطلی نکنیم از بعد کون الخبر صحیحن و بموثقن موردن در بیام سیر و مشمولن لإطلاق العدلت اللفظی علامات قدن و ذکرها یعنی وقتی دیل حجیت آمد گرفت لا وجه یعنی وقتی خبر آمد حجیت شد با حجیت خبر یه مشروع که مشروع که حجیت نیست نمیتونه اون بیاد حجیت از بین نه نم ازا تسالم جمعی الفقه ها علا حقن مخالفن للخبر سنید یه حسن این قبل می کرده و اما از اختلاف ها بله بعد ایشون اینطور می فرمن. خلا دلیل آخری کلام جراح ادیت عن الخبر الذي يكون حجه في نفسه لمجرد اعراض المشهور عنه پس ایشون در حدی به این قاعده که جابر رکاتر که شهرت جابر است و به دو نکته اشکال کرده. یک نکته این که اگر خبیر ضعیف بود اون جابر گیر مشهورن که ظریف شهرت از ضعیفه ضعیف, ضعیف نمیتونه جبران ضعیف بکنه نتیجهش باسه این یک وقت اما اگر خبرصحیه بود و اعراض شد چون خبرصحیه هجته چون هجته عمل مشهور که فی نفسه هجته نیست غیره هجته نمیتونه حجت رو بکنه. اثقاف بکنن شد؟ مفهر مفهر. دو نقطه هستا یک نقطه نیست دو نقطه ایشون ذهر کردن یکی برای اینکه شهرت عملی جابر نیست یکی برای اینکه شهرت عملی کاسر نیست کسانی که بعد از استاد بودن یا قبل داشتونن بعضی ها بعضی ها یکی از این دو مثلاق قبول کردن مثلا گفتن بله هسته اگر حجت باشه غیر حجت نیم تونه برشتونه لذا کاسریت قبول نکردن اما جابریت قبول کردن ازده ای هم جابریت قبول کردن کاسریت قبول نکردن ازده هم مثل آقای هر دو رو قبول نکردن ازده ای هم مثل مشکول تیشون نسبت دادن هر پس مجموعه یا آرا... استدلال هایی یعنی هستند که برای من نقل شده چون نیلم در همه کتاب شبیه همین استدلال آیه خوییه و ضعف این استدلال روشن شد یعنی ما با اون تحلیلی که دیروز به شما عرض کردیم مثلا آیه خویی میگن خبر سعی حجت چرا با شهرتی غیر حجت از از حجت بونه این نکته روشن شد اون تحلیلی که من دیروز عرض کردم سعی حجت هست به محیار و اغلاهی به تعبیلیشون اون کسی که میگه رفیت بکنی نمیگه این حجت مخون رفیت بکنی میگه من محیار من در حجیت عمل اصحابه شواهد مذهبیه پس آقای خویه اشکارشون کجاست؟ ایشون میگه این حجت حالا که حجت چرا رفیت بکنی داره به حجت جواب نه خیلی این حجت نیست چون ما دنبال شواهد و نیستیم دنبال شواهد مذهبی هستیم دقیق کردیم آقای خوبی تو ذهنیتش خبر واحد سقه رو به جریان و اغلایی دقیق حجت گرفتن میگن این حجت چرا به شهرت رفیت بکنیم اون تحقیلی که من جز از کدم و اوشنی حجت هست به معایی و اغلایی به تحقیلیشون اون کسی که میگه اینو ما قبول نمی نمیگه اینو هجت است و شهرت زنید میاد او رو برمیداره اون میگه اصلا ما ش... در شریعت دنبال شواهد مذهبی هستیم شواهد مذهبی کجا شهرت عملی بینه هست آقای خویش که آل طرف ما مثل ایشانه طرف مقابل خیال این تو خویی به ذهنیت خودشون خودشون چونه ارده دردارن خیال پر طرف مقابل مثل ایشانه یا این حجته او اصلا اشکال ولی دو اصلا شما در کلماتو شکریه اصلا اصلا در استدالات فعل خبر قرآن لقبه چیه یه صحابت نمی کنم بسی رو جلیه اصلا نمی چرا؟ چون فیش اونها شواهد مذهبی مقدره ملیار در حجیت شواهد مذهبی دید. اون مطلب اولیشون هم که خبر ذریع حجت نیست شهرت هم حجت نیست این اشکال داره یعنی هر دو استدلال آی خویی به نظر طرف مقابل اشکال داره ایشون میگه خبر ذریع حجت نیست بله به مئیار و اماش اما شهرت حجت به مئیار مذهبی به شباهد خاص امامی در فقه امامیه اینطوره. نه اینکه که در فقه شافعیه یعنی تأثیر ایشان بله اهل سنت ایتونه خبر سعی خونجه خبر سعی خونجه لذا اونا اعراض فش از فوق هاشون محسر نیست رو مبادی رو هست مشکل اینه که ایشان توجه نفرموندن که در شیعه اصل این مبنا محل کلامه نمیان بگن خبر ضعیف شهرت هم ضعیف زعیف, زعیف توتا جابر ضعیف میشه نه میگه ما به خبر کاری نداریم ما به دنبال شواهد ملتبی هستیم ولی لذان اصلا نگاه میکنیم اصلا بحث خبری نمی کنم دنبال بحث رجالی نمی کنم اصلا نداریم کلن بحث وجود یا صرف را کنم بحث وجود یا صرف پس و ما برگیم این نحوه استلال آرخوی قدس الله نفسه چه در جابریه چه در کاسریه چه بعضی از مسئله ای در اصما فرموندن انصافا کلن محلمه خطشه و تعماله و لذا از کردیم انصافا این ما قبول بکنیم اجمالا شواهد مذهبی ما قویه و اینه که قایم شدن گفتن شواهد مذهبی بر شواهد مثلا پس ما اغلایی در موجود خبر مقدمه، نیم خس... هایی که در این طایفه هست که من توضیح که کردم این بحث داره تو جاش اینجا نبود چون خیلی بحث مهم نیست چون همین سبب شده که فتابایی مثلا ایشان و خالف با مشهور بشه این بس به خاطر اهمیتش من انوز این اعوازش مخودم تا موارد نظر و اشکال روشنده